یک خصوصیت ادبی و یک هنر فردوسی رو در گذاری اینجا باید بنده به عرض برسونم و او این است که فردوسی اغلب یه صنعتی رو به کار میبره که در اصطلاح ادب به او میگن براعت استهلال براعت رو هم با عین نویسن و معنیش توانایی دیدن ماه میدونیم در ای که اسلام آمد به ایران دیدن ماه جزء وظایف دینی شد در حقیقت برای اینکه در دو مورد یکی در ماه رمضان روزه با دیدن هلال اول رمزان شروع میشه و با دیدن هلال اول شوال هم خاتمه پیدا میکنه یکی هم در ماه زلهجه که برای حج باز چون در دهم ده زلهجه روز ایده قربانه باید این ده روز رو از روز دیدن ماه حساب بکنه بنابراین دیدن ماه مقدمه یک بخشی از اعمال دینی است در اسلام در اصطلاح ادب توانایی ماه دیدن درست تقریبا به همین معنی است معنیش این است که براعت استهلال صنعتی است که شاعر یا نویسنده در مقدمه مطلبش در همون چند سطر اول یک مطالبی و یک مسائلی رو مطرح میکنه که خواننده یا شنونده از شنیدن و خواندن او فوراً بفهمه که در سراسر این داستان و در سراسر این کتاب مطلب از چه قراره مثلا در آغاز داستان بیژن و منیژه یک مقدمه بسیار بسیار فصیحی آورده استاد توز درباره شب تیره و اینکه ماه اصلا پنهان شده بود و خروب شدد برمی و شب خیلی تیره بود و بد بود و چه بود و چه بود و کاملا نشون میده که در اینجا داستان بند است و زنجیر است و زندان است و چاه است و همون بلایی که به سر بیژن میاد در اینجا هم با اینکه وصف بهاره اولا یه مقداری از تنگ دستی خودش شکوه میکنه فردوسی بعد هم میگوید که اگر ناله بلبل رو گوش کنی میبینی که بلبل به زبان پهلوی از مرگ اسفندیار میناله و قررش ابر در شب تیره هم مثل فریاد رستنه بنابراین تقریبا تمام داستان رو خاننده همینجا میتونه پایانش رو حدس بزنه که این ماجرهایی که شاهدش خواهد بود سرانجام به کشته شدن بسیار تحصیف آور اسفندیار و پیروزی رستم منجر میشه. این صنعتو رو بهش میگن برایت استعلال بعد حکیم توس میره بر سر داستان و داستان رستم و اسفندیار رو از بلبل نقل میکنه. میگه من این داستان رو از بلبل شنیدم. حال ظاهرا این قسمت جزء روایت‌های ملی است به دلیل اینکه در اینجا اسفندیاری که بر اساس دین زردشت مرد خدا بوده است و مقد مقدس بوده است و اینا اینجا کشته میشه و شکست میخوره در عین حال باید عرض بکنم که نکته بسیار بسیار مهم در این داستان این نیست که روستن فیرو زد تو چشم اسفندیار اسفندیار مرد چنان که در کتاب دبستانی دوستانی چارپنج بیتی از این داستانو نقل نرمی مسئله مهم این است که مردی که جهان پهلوان ایران بوده تمام عمرش که به روایت فردوسی چون در حماسه، سالها خیلی زیاد میشه رستم 700-800 سال عمر داشته مثلا در این زندگانی طولانی جز خدمت به ایران و جز جنگ کردن با دشمنان ایران و اینا هیچ کاری نکرده حالا چطور میشه که یک مرتبه؟ شاهزاده ای ایرانی شاهزاده ای که مقدس داده شده شاهزاده ای که جز خدمت به دین و آیین و برانداختن کژی و دروغ و جنگ کردن با دشمنان ایران هیچ کاری نکرده این در آخر کار واداشته بشه روبروی رستم جهان پهلوان ایرانی و کار این دو به جنگ بکشه به جنگی که بعد حتما با کشته شدن و از میون رفتن یکی از این دوتا به پایان برسه. این عواملی که موجب میشه این دوتا رو هم بیستن این قسمت بسیار مهمه داستانه. و این که بعد از اینکه جنگ شروع شد چه ج هم جنگ کردن اون خیلی مطلب مهمی نیست. و در تهیه داستان خواهیم دید که بسیاری مسائل، بسیاری عوامل و حوادث مختلف پیش میان، و مثل یه توری که یه دست ماهی رو همینطور میبره به سمت جایی که باید بگیرن اینها و بریزن روی خوشگیه راه رو به تنگتر میکنه و تنگتر میکنه و پهلوانان هیچ راهی به جز همون که سرنوشت غمانگیز براشون تعیین کرده ندارن و نمیتونن پیش برن و این سرنوشت ادامه پیدا خواهد کرد تا برسه به ازمین رفتن یکی از پهلوانان این تراجدی رست و در حقیقت این داستان از اونجا شروع میشه که اسفندیار همه کارها رو کرده همه فتوحات رو کرده ایران و تمام جاهایی که اطراف ایران بوده همه رو به دین زردوشتی در و حالا برگشته که وعده‌ای که پدر به او داده وفا بکنه به بول بول شنیدم یکی داستان که برخاند از گفته باستان که چون مست باز آمد اسفنديار دو گشته از خانه شهریار کتایون قیصر که بود مادرش گرفته شب و روز اندر برش چو از خواب بیدار شد تیر شب یکی جام میخواست خواست بکشات لب این گفت با مادر اسفندیار که با من همی بد کند، چهریار مرا گفت چون کین چاه بخواهی به مردیز شاه، همان خوهران را بیا ریز بند کنی نام ما را بگیتی بلند جهان از بدان پاک بی خو کنی خو به معنی گیاهای مزرریست که در کشتارها رویده میشه و باعث ضرر رسوندن به گیاهای مفید میشه و اینا رو معمولا، بر می بجین می به به اصطلاح اینجا مراد دشمنانه جهان از بدان پاک بی کنی بکوشی یا آرایشی نو کنی وقتی این کار کردی همه پادشاهی و لشکر تو راست همون گنج با تخت و ابسر تو راست کنون چون برارت سپه سر شاه بیدار گردت زخاب بگویم پدر را سخنها که گفت ندارد من راستی ها نهفت وگر هیچ در آرد به چهر به یزدان که بر پای دارد سپهر که بی او تاج بر سر نهم همه کشور ایرانیان را هم تو را بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل جنگ شیران کنم به این ترتیب اسفندیار که مست از پیش پدر نامراد و ناکام باز آمده میاد و با مادرش درد دل میکنه که شاه با من بد میکنه این همه وعده به من داد من این وعده ها رو همه رو انجام دادم ولی خبری نیست و من فردا میرم و در روی پادشاه میستم و مطالب رو به اون میگم وعده هاش به یادش میارم و اگر دیدم که کوچکترین چین و شکنی در چهرش پیدا شد یعنی اخم میکرد به یزدانی که سپهر رو بر پای میداره که بدون خاست او هم تاج رو بر سر میگذارم و تو رو بانوی ایران میکنم و خلاصه پادشاه میشه اما طبعا مادر که جهان دیده و پدر اسفندیار شوهر او هزقی عمری باش با زندگی کرده بهتر خورب و کوی گشتاس رو میدونه و به علاوه به علت داشتن شم زنانه و شم مادرانه بوی خطر رو احساس میکنه. و فکر میکنه که این خیلی تصمیم سهمین و ناراحت کننده است که اسپندیار گرفته و اولین کاری که میکنه این است که کوشش میکنه او رو از این تصمیم منصرف کنه به او میگه که گوشتاس به تو تاج تخت بده نیست و تو بهتره یه قدری صبر کنه او دیگه پیر شده. خودش میره بعد هم تو همه چیز رو که داری همه اختیارات که به دست توست فقط تاج و تخت اسمش با او هست او خواهد رفت اقدام شدید نکن این نظر مادر فردوسی این که غمی شد گفتار او مادرش همه پرنیان خار شد بر برش بدانست کان تاج و تخت و کلاه نبخشد ورا نام بردار شاه بدو گفت که رنج دیده پسر زگیتی چه جوید دل تاج بر مگر گنج و فرمان و رای و سپاه تو داری بر این برف و زونی مخواه یکی تاج دارد پدر بر پسر تو داری دگر لشکر و بوم و بر چو او بگذرت تاج و تختش تو راست بزرگی و شاهی و بختش تو را چنی کوکتر از نرشیر ژیان به پیش پدر بر کمر برمیان اسفندیار که این حرفا مطابق میلش نبوده و یه خیالات دیگری پیش خودش بافته بوده جواب سردی متاسفانه به مادرش میده و این مهر و این نظر صاحب مادر رو که روی شناسایی عمیق گشتاس اظهار شده بوده به چیزی نمیگیره. میگه که چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زدین داستان هوشیار که پیش زنان راز هرگز مگوی، چگویی سخن باز یابی به مکن هیچ کاری به فرمان زن که هرگز نوینی زنی رای زن. خیلی جواب سختی است. درجه پر از شرم و تشویر، شد مادرش تشویر یعنی خجالت و ناراحتی. پر از شرم و تشویر شد مادرش ز گفته پشیمانی آمد برش بعدم اسفندیار میذاره میاد بیرون و میره پیش پدر بشد پیش گشتاس اسفندیار همی بود با رامش و میگسار دو روز و دو شب باده خام خرد بر ماهرویش دل آرام کرد سه امروز گشتاسب آگاه شد که فرزند جوینده گاه شد یعنی تخت همی در دل اندیشه بفضایدش همی تاج و تخت آرزو آیدش بخوندان زمان شاه جاماسپ را همان فالگویان لحراسب را برفتند با زیجها بر کنار بپرسید شاه از گوستفندیار که او را بود زندگانی دراز نشیند به شادی و آرام و ناز به سر نهت تاج شاهنشهی. بر برو پای دارد بهی و مهی چو بشنید دانای ایران سخن نگه کرد آن زیچهای کهن ز دانش اوها پر از تاب کرد ز تیمار مجگان پر از آب کرد همی گفت بد روز و بد اخترم ببارید آتش همی بر سرم مرا کاش کی پیش فروخ زمانه فکندی به چنگال شیر وگر خود نکشتی پدر مرمرا نگشتی به جا ماسب بد اخترا چو اسفندیاری که از چنگ اوی به درد دلش شیر زاهنگ اوی ز دشمن جهان سر به سر پاک کرد بر از من درون نیستش هم نبرد جهان از بدندیش بی بیم کرد تن اجده ها را بدونیم کرد از این پس غم او به باید کشید بسی شور و تلخی به باید کشید به طور سربسته میگه که کاشکی من اصلا به دنیا نیامده بودم یا شیر مارو دریده بود و اختر بعد یار من نبود که من این همه سختی ببینم قبلا هم جاماس کشته شدن پسر خودش رو و کشته شدن پسران گشتاس رو همه اینا رو پیش کرده بود و ناراحتی کشیده بود حالا هم باز گشتاس از او پرسید که دیگه من توضیحات او رو نمیگم ناراحت شد و گفت حالا اسندیاری که چنین چنان بوده درباره او باید بحث و غم او رو باید خورد گوشتاست گوشش تیز میشه میگوید که درست بگوی ببینم مطلب چیه بدو گفت شاهی پسندیده مر سخن گوی و از راه دانش مگر حالا زود بشتاب و با من بگوی که از این پرسشم تلخی آمد بروی او چون زریر سپه بد بود مرازیستن زین سپه بد بود زریر برادر گشتاس بود جنگ های زیادی با ارجاسب کرد و کشته شد و حالا اشاره به اون میکنه که اگر سرنوشت اسفندیار سرنوشت زریع باشه من باید باز داغ دیگری ببینم و این خیلی بده بعد میپرسه از ورا در جهان هوش بر دست کیست یک معنی کلمه هوش مرگ و این معنی است که متداول نیست در بین عامه ولی معنی مرگ داره و در همین داستان سه جا میاد و میرسیم در جاهای دیگر هم آمده در داستان ویسرامین میگوید که تو با هر کس به شیرینی چون نوشی چرا با من به تلخی همچون هوشی یعنی به تلخی با من مثل مرگ میونه. به هر حال میپرسه که هوش اسفندیار یعنی مرگ او در دست کیست؟ ورا در جهان هوش بر دست کیست که از آن درد ما را بباید گریست به دو گفت جاماسب که شهریار تو این روز را خار مایه مدار ورا هوش در زابلستان بود به دست تهم پور دستان بود به جاماسب گفتان گهی شهریار به من بد بگردد بد روزگار که گر من سر تاج شاهنشهی سپارم به دو تاج و تخت مهی نبیند برای بوم زاول ستان نداند کسو را به کابل شود ایمن از گردش روزگار بود اختر نیکش آموزگار میگه اگر که من اصلا فورا تاج و تخت رو بگو بسپنم و او هرگز دیگه روی زابلستان نبینه آیا درست خواهد شد جواب جاماس مینه چنین داد پاسخ ستاره شمار که بر چرخ گردان نیابد گذر از این پرشده تیز چنگجده ها به مردی و دانش که آمد رها به همه بودنی بیگمان است از او مرد دانا زمان حالا اینجاست که میگوید شاه تو فکر پرور رفت و فکر رو فردوسی بهش اشاره میکنه میفرماید که دل شاه از آن در پرندیشه شد سرش را غم و در هم پیشه شد بدندیشه و گردش روزگار همی بر بدی بودش آموزگار میگه فکر بعد و گردش چرخ و سرنوشت بد اسفندیار گشتاس رو به بدی راهنمایی کرد بعد از اینکه که میپرسه به این دقت میگه که این مرگش در دست کیست و چه و چه و بعد میگوید که حالا من تاج و تختو به او بسپرم نمیگه میسپرم میگه اگر من تاج و تختو به او بسپرم آیا از این سرنوشت رهایی خواهد یافت؟ جاماس میگوید خیر بعد که میگه خیر شاه میگه به فکر رو رفت و گردش روزگار و اندیشه بعد او رو به بدی آموزگارش بود بدی عبارت از این است که بعد از تمام این حرفها اسفندیارو رو میخواد و او رو میفرسته به زابلستان. زابولستان مطالب رو البته ما از زبان حکیم توست مطالعه میکنیم شب گرد کرده انان برآورد کرشی درخشان سنان نشست از بر تخت زر شهریار بشد پیش او اسفندیار همین بود پیشش پرستار فش پراندیشه و دست کرده به کش پرستار فش یعنی مثل بندگان پرستار معنی خدمتگزار و بنده و اینهاست و فش همون است که حالا در فارسی میگیم وش مهوش یعنی مثل ماه پرستارفش یعنی پرستاروش یعنی مثل خدمتگزاران و پرندیشه و دست کرده به کش دست کرده به کش هم یعنی دست به سینه ایستاده بود چو در پیش او انجامن شد سپاه ز ناماوران و ز گردان شاه همه مو بدان پیش او بر رده ز اسپه بدان پیش او صف زده پس اسفندیار در یه چنین مجلسی بدنی که همه جمع شدن شروع میکنه به حرف زدن پس اسفندیار آن گل پیلتن براورد از درد آنگه سخن بدو گفت شاه ها انوشه بدی تویی بر زمین فره ایزدی مرا داد و مهر از تو پیدا شده است همان تاج و تخت از تو زیبا شده است تو شاهی پدر من تو را بنده هم. همیشه به رای تو پویندم تو دانی که ارجاسب از بحردین بیامد چنان با سواران چین بخوردم منان سخت سوگند ها به پذرفتمان ایزدی پند ها که هر کس که آرد بدین در شکست دلش تاب گیرد شود بود پرست میانش به خنجر کنم بر دنیم نماند مرا از کسی ترس و بیم و از آن پس که ارجاسب آمد به جنگ نبرگشتم از جنگ دشتی پلنگ به سرگذشت خودش به طور اختصار اشاره میکنه میگه من رفتم به جنگ ارجاسب و از جنگ او بر نگردوندم ولی مرا خار کردی به گفت گرازم که جام خورش خواستی روز بازم ببستی تن من به بند گران ستونها و مسمار آهنگران مسمار یعنی میخ سوی گمبداندش فرستادیم، زخاری به بدکارگان دادیم، به زابل شدی، بلخ بگذاشتی، همه رزم را بزم پنداشتی، بدیدی همی تیغ ارجاس را، فکندی به خون پیر و را، چو جاماسب آمد مرا بسته دید، آن بستگی ها تنم خسته دید، مرا پادشاهی پذیرفت و تخت بران نیز چندی بکوشید سخت بدو گفتم این بندهای گران به زنجیر و مسمار آهنگران بمانم چنین هم به فرمان شاه نخواهم سپاه و نخواهم کلاه به یزدان نمایم به روز شمار به نالمز بدگوی با کردگار مرا گفت یعنی جاماس برا گفت مرا گفت گر پند من نشنوی بسازی تخت بر بدخوی دگر گفت که از خون چندان سران سرافراز راز با گرزهای گران بر بران گه خسته تنها به تیر همان خواهر آونت ببرده اسیر دگر گرد آزاد فرشید ورد فکنده است خسته به دشت نبرد خسته یعنی مجروح زخمی. زه ترکان گریزان شده شهریار همی پیچد از بند اسفندیار نسوزت دلت بر چنین کارها بدین درد و تیمار و آزارها سخنها جزین نیز بسیار گفت که گفتار با درد و قم بود جفت بر هم شکستم همه دوان آمدم نزد شاه رمه از ایشان بکشتم فزون از شمار ذکردار من شاد شد چهریار گر از هفت خان بر شما سخون سخن که هرگز نیاید به بون زتن باز کردم سر ارجاس را یعنی سرشو بریدم زتن باز کردم سر ارجاس را برافراختم نام گشتاسپ را زن و کودکانش به بارگاه بیاوردنمون گنج و تخت و کلاه همه نیکویی ها بکردی به, به گنج مرا مایه خون آمد و درد و رنج ز بست بند و سوگند و پیمان تو همی نگذرم من ز فرمان تو همی گفتی ارباز بینم تو را ز روشن روان برگذینم تو را سپارم تو را افسر و تخت آج که هستی به مردی سزاوار تاج مرا از بزرگان بر این شرم خواست که گویند گنج و سپاهت کجاست میگه بعد از اینکه این قولها رو به من دادی من حالا از مردم خجالت میکشم از سرداران بزرگان خجالت میکشم که به من بگن که با این همه کارا که کردی گنج و سپاهت کو بهانه کنون چیست من بر چیم پس از رنج پویان ز بحر کیم اینجا اسفندیار به این ترتیب مطالب خودش رو میگه برای اینکه گشتاز جواب بده ظاهرا جوابی هم نداره دیگه منطقه قبلا خود آماده کرده برای اینکه یه بهانه دیگری پیدا بکنه و فعلا اسفندیار رو بفرسته دنبال یه کار دیگر.